گلها گرندگارند. برنامه چناری چهاساد و هشتادو پنج. این برنامه به یاد رهیق مایگری شاعر اردان دب و کران ناجی تنظیم کردید. やで、ラわせるのはより、しゅうりでいてくれ、ええ、しゅ ジュース、ネミボヤトウス。オンのーチジャフォルジュース、ネミボヤ t ウス。センギンゼロバトウス、ネミボヤトウス。マローゼトウ、ペイラトウ、サマノイニンス。マローゼトウ、ペイラトウ、サマノイニンス。アドウス、ベジュース、ネミボヤトウス。 なぜなら、なら、なら、なら、なら、なら、ص ら、ا ら、なら、なら、なら、なら、و ら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、ا ら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、ص ら、ا ら、なら、なら、なら、س ら、なら、なら、م ら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、و ら、なら、な ب س ら、ا ر な و ب س ら、ا ر な、な、ش ع な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、ن な、な、 و باز خواهی می شود و در هر شعرش صدای قلب شوریده شامید به جان خواهی می شود از که و کجا این نبا خاموش را خاموش خواهد شدید راوی آر در ساغل حسدی شراب نازمید این که در جان شفتی نید به جو خونه آر زندگی خوشتر بود در پرده رحم و خیال و پلوشان را وفای سایه محرام نیست ما به آن گل از وفای خیشتان دل بسته این و نه این صحرات توهی از لاله سیراد نیست یه معیری قدل سرای شوری جبورتها به درس ما قدمیان ما رفت قصد بیماری دراز و درد باری تنجام جسمش درد و رنج را جراب گفت و او که از مدت ها پیش در بستر بیماری درد روی خود بسته بود به خواب رفت خود نسیم سباه می برادم رو یه یه رات چبوه ی گل در کوچهام برادم رو با باول شوق در ربع خوشی می رسد حرفات یک دل به تو یا خدا می برادم رو دریک خدم رستی زدی تو قدم رهی یک بوسه نسیم زجا میدرد برای موسیقی رهی معیلی به سال ۱۸۸۸۸ درخانه وادی اداب دوستو شهر ها و فاب جهانگو داشت. شیل درخانه وادشان در سومیراسی منده گار بود. چه فروغی وسطامی شاعری توان آب و قدر فراوی باریک بین اسرعاجار. ولاد در وادی مالیرال ممالک نگاه مدت دل بود. ولاد اموزادگانی رهیم مالیری. و چنین بود که این نوعی فراوی که در آبادی شهریان بسیار زرد گونجه داد. و هنوز که چهار ده سال نداشت که در سودایی اشکی کودکانی و سرآفرشیدایی چنین صرحت. کاش درمانیشم اکراد میامد، کاش درمانیشم اکراد میامد، در می بین روز مفاورگات به شدت میامد. آن لب که چوچانی ماست دور از لب ماست، ایکاش که چوچانی ما ایلاک میامد. و او رنگ و شور و دیوانگی های دلدادگی را از همون سالهای داغ بلوغ دریافت که دلدادگی برای او با شعر جدائی نداشت روی از هم پس قلب مهربان و پرجوش و خروشش هر دم سر به سنگ محبتی میکوست تا آزرد تر شود تا شعر آتشین و گرم و پر اثر به سرایت کامی نبردیم از هم سین هم آیری، آرامو چار می‌سپندی. وقتی در کن بود، همراه استفادو می‌رسد و شود می‌بارد. آرام تو حال می‌گفت و لعنت می‌گفت. مثل ثراب بود. در نزافت فاکیزگی و سواسش و همیشه فاکیزگی پشتیش. زیبا و تلایی سرعتی کشید. اگر آپاتین روت‌های آمر، اندامی کفید و بارید. ششمانی سخت و با نفوذ آزادی و سدای جن داشت. او شاه ایرانی زندگی می کرد و خلقتی که ملاطفی او اسرارآلود داشت. کسی بیاد به یاد ندارد. شاهی یک قزل سرای ماهرمان در نزد بیگانی و در جنب ادوسان از خود جان دید. اگر شادی او مهربانی تلابیق از برای جن بود و در جن. خودش را فراموش میکرد. در کاری شیر اش می‌بازید، و چنان میشود که رود هایش رفه در خانهش در درون خود می‌بسته، چهل میشست، و با سعی و هفزو سعی بر ملانا تا سه هفته شوری دیگر حال میکرد. سعید را مخصوصاً آشغال دوست داشت، و دیوان سعید بر بالیش و در قهوش بود. آقای علی داشتی. محافظ و عدف شناس وقتی که بر سر کار حافظ نشد و کتابی در آشنایی و معرفی حافظ تعلیف کرد رهی که دوستی دیرینی با دشگی داشت از سر حسد و رشک و شور به دشگی آویخت و در جانش گله ها ریخت تا دشگی هرچه زودتر راهی قلم روی سعدی شد اما رهی با این همه در کار عشق و دلدارگی به سعدی なんでしょうね。 که هر وقت قاضی در وجودش ماجمیر است وارو بس هشیمی است رهی صاده پور بلهری آمیگذرمید. دیک جاهران میگرست راه میداست صاد میداد دن دنمیکرد و مینشست. لاجا هن از خانه بیرون میداست و به آبادی دوست پناه میگرفت و اینگاه که دادیاد درون میخوردش یلا جامید و دارد ماندیگوف. باز یک قبل در من می جوشند و جوشش قبل همه جانش را در تب و تاب می افکند حرکاتش که همیشه آرام و سنگی بود و سبی می شد بی اختیار به کورساران شنیدان می رفت در تنهایی با خودش و جوشش درونش خلبت می کرد و به بخره وقتی جوشش قبل به عوج می رسید شاعر بی آرام می شروید خیانمان دارد من در نو توانی خیانمان دارد من در نو توانی اسیری هستی ابرو دچار تزریق آخشیان ورب آب رفته به دام افتادی آذیار رفته نه از نامحبانان در سین ریشم که داخت محبانی های خیشم نه دمسازی که بازه راز گوین نه یاری تاقم دلت باز گوین دوستانو تا واقعان رو احتمال بیرون و مردمش در جامید دوستان گرامی بود. از همه دیگران از, از صاحب من سبانکی شریعه لشکری، از فنرمندان، از دانشجویان و جوانان، از روزنامه نگاران، از شهرشناسان و مردمی که چرب بازار دوستان بسیار داشت. کسی به یاد ندارد که رهی معلی دلی را آذوقه باشد. زیرا همه صفا و سلامت و آرامی بود کسی بیاد ندارد که به صدای بلند و خشمانود حفظ داده باشد زیرا وارسته یه فردان حالی بود که پا و رود حوث ها و حایش های کوچکه جسم و دل گذاشته بود و کسی نیز بیاد ندارد که به قفقه خندیده باشد او پنه دینام و نشان و جابدانی در دل داشت که این عمم همیشه لی خدا و رودی که راش پریدی جذاب از راند پریدی او اندوخته شده بود و چشم‌اندک تاب زبان فروش می‌نداشت و پشت اندوک لبخندی مختنی راش. من بیانش می‌گویم که اغلب اواطر در کتابخانه‌ش می‌گذارند و در کاره ادبی کلاسیک ایران به پژوهش‌های جالب دست دارد. چندین زادار بید شهر ناب. آشوارای ایران اثیف داشد و در مثر او اگر چه ساعتی هم نبسته اش آرای ایران و شیب آن ترین نهر سویایی چنی واران بهاری جنرال تابوتی باشد و روح را به آفتاب باتری بیاورد. رهی فرولتن و بزرگوار بود او که در مدت چندین سال اخیر شاعر نامدار و ناماوری بود هیچگاه از این بابت بچار اجبوخ و پسندی نشد فهله هست هر روز افتاده تر محرومتر و متوازه تر می شد می گفت آنها که لفظ من را زیاد به کار می ورند حتما نمی شان ایب و ایبتی دارد و باز می گفت آن شاهی رو از این دنیا گمان می‌کنند تا مال را سیر آست. دیگر با یه سرخواد بگذاره دو بنیاد. ادوشاره خود بی نیش و دست. و کشم شرای بنیاد سیگرند هایی ادبی ایران است. و گل نه اینکه هستید که در ماهان سعی و حافظ و مولانا وساید جور آت کنند از فیل خودش هستید. راز می‌گه دارو کم حرف داریش. برای همی‌یوند زین بند به بندی زنوفارداست نگذاش. گاه درملزیس اون سمت زنی زد. نمتن فراتشی روحیمی کوونلم آیا مباد. کسی کر روحیمی کو را آنیمی فراتدی. او به هرگزی با ایش ناف بود. اسیر رانگو آهن بود. اسیر روي خشو گلو شیرو نگاشیو موسیتی بود. در موسیقی دستی داشت و در خلقت خودش فاضل نبود. سافرا شورن یزکر حالی نبود، و آن دام که به ساف پناه می‌بود، آن اندوشه ناز و نازو همیشگی کار بدست داشتاد بود. می‌گفت خدا ایرامین نت ها به جان دارن، که اگر اندوشه دیو کار به همیشگی او، حالیم ما بزری به منزاد، در هواز راه‌های گریز از این حجوم اندوها، که گاه بومیان تن می‌شوند، بنام نشان داد. 私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけた。私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見 a けた。私はそれを見つけた。私はそれ a 見 o けた。 ハッシュアッシュ、ファーザンデディーバンダスしォー、ファーザンディーバンダスフォー、チェノーナスサルメーニファドー、ファデオンハーエフニバディー、キタロンハー、モザリロー、エベナゴジュメーファーディーファーザンディーバンダス、ニモリ。 هر تلمه بر جای خودش می شد دارید و کم تر تلمه ای را می توانید بردارید یا قبض کنید او گوهر شناس شعر در می سافد رفتیم و پایی بر سر دنیا گذاشتی کار جهان به احل جهان ما گذاشتی چون آهوی رمیزه به وفشت فراغ شهر راحتیمو سردآمدان صحرا گذاشتم، بالایی هفت پرده‌ی نیلی جاینا، پاوشن حباب و سرداریا گذاشتم. ما را باس است جلبه‌ی شاهدان قوت، دنیاو بالایی مردمی دنیا, مردم دنیا گذاشتم. در جستجوی یار دلازار کس نبود این رسم کازه را به جهان ایمان بذاشتیم راهی در کار ساختن ترانه ها و تفانیف از دیرواز با راژیو ایران کن کاری نزدیکی داشته است او در کار پیراستن ترانه های آهندین ایران از کجاوری ها و کلمات بی اصل و تکیباز سوست کوشش‌هایی تا کی ایکار بوده و به زودی کرانه‌ها و کسانی فیکس شد و به آواز آواز خانوشت کرد در دل چنی شد و قبول آمی افت. از نیون این کرانه‌ها یه دلنجیز و پیروز می‌توان از نواهای نی، آتشین لاله، مرغهق، بکناران بیشین و کرانه‌ها ی دیگر نام برد. رحی در کار این ترامه ها نیست و سواس و دقت خاص گوهری ها را داشت و در کار آهنگ هایش از دستی که در موسیقی داشت استفاده ها درد و توجه ها سیرا که به آهنگ سازان در این باب می داد همیشه مورد قفول قرار می گرفت رحی که از قصائد و قذریات و قصائت و متایبات چند سیزار بید سروده است به سختی رضا می داد تادیبانی از اشعارش بیشتر است. لذا انجام همین چند سال پیش بود که دسرار دوستان و هاوکاهانی شهرش سالی به آن مجموعی از اشعارش منتشر شد. او ساختیرو متوازی بود و در بادیش ایران و مخصوصاً شهر معاصر ایران نظرات جالبی تادید داشت. یکبار در مصاحبه‌ای که در رادیو ایران برخی انجام یافت، قبل سرعای گوهری معاصر چونی گفت در حیده بنده دوره معاصر از دوره های درخشان عذبیات فارسیس برای این که در این دوره عده شعرهای آجیغر نسبتا زیاده、بس. و در هر نوع شروح هست سکت سخنی سرعایندگان خوبی داریم که در بعضی از, از ازوار سابق نظاهر آنها به نوز رفت پیدا شد تکشیوهای مختلف مخصوصا در اشعار سیاسی و انتقادی شورای بزرگی مثل ادیب نامالک فرهانی و ملک شورای بهار ذهور کرده. فاوراب زرین رخ دعواهای ادبی فارسی عفته بود. یکی از نویسندگان مالک با تکشیوه خاص و مناسب با خودش از استادانی تازه بلی دوری ماسه بود. کافی از آنها شاعری توانایی میتوانید آن را پیدا نشده بود.、بله. قبل نیست که قرنها رونه و تقاوت خود رو از بست داده بود در این دوره رنگ تازهی وزی رفت و جلوه و جمال دیگری پیدا کرد مضامین تازه و تعبیرات بی سابقهی که مختص زمان حاضر است در قبلهای بردی از شوهرهای محاصر زیاد دیده می شود مثل شراب بوسه آقوش نگاه موز دیسو کشنه در خوابگاه آقوش شوله نیوزری شراب نور و امثال این ها وجود این گونه تعبیرات و ترکیبات جدید قذل این روزی را از قذلهای دوله گذشته متمایز میکنه و نحوه احساس و در کشورهای محضر را به خوبی نشون میده در ورنامه گلها آهنگهای بسیاری که بر روی اشعار رهی معیری ساخته شده است نوعی جادانگی و مندگاری و قبول آم یافته است و پس از سالها همچنان این فیروزی و دلخواهی ادامه می نابد من از روز ازل شعر فشوری از رحیست و اگر که چندین سال از عمر یا هم می گذرد همچنان خواهان و طالب دارد و همچنان تر و تازه و دلنگ ویزه است من از روز ازل نمروی تو، سرچشمه خوی تو، سر درخشان باوده، ماست نهود نمداش ماستی، هست نهود you من قصد دارم گرچه به هر کهوم حسیدی. که در شان درم تو پی امیدی مرا تو پی امیدی مرا آقای تشبیدی رتو هم رفمیدی در تنزین و خبر آهند و روی اشبار شادربان رهی ماگری چگونه عمل میکردید؟ فادر تماس‌هایی از این جهت با شاعر فقید داشتید که خاطراتی از آن شاعر عزیز در ذهن شما باقی مانده. ذره آهنگسازی و خصوص وقت‌کننده تکنیک از زمانی در مکیده شد. که یکی از ترانه‌های رهیرو که تو وان آهنگی اون هم از خود گوبد شنیدم. مثلاً این ترانه یکی دارم شابورز از عشق ماهی بردیده و دل عشقی و آهی این آهنگ و این شیف تار و پود من رو لرگوند و از اون به برد تصمیم گرفتم که در این زمینه فعالیت کنم خوشبختانه افتخار نصیبم شد و این دوست عزیزم چندین کرانه بر من ساخت که هر کدومونها واقعا مبین آهنگ بود و حالت درونی او خوب درون مستطر بود آخرین هستری که رهی ساخت آهنگش از بنده بود که نام آزاده از برنامه گله ها پخش شد دو سال پیش بود که این آهنگ رو من تیه کرد بودم یک روز برای رهی این آهنگ رو با ویولون زدم و باتم که احساسی شما نفتید این آهنگ دارید او همونطور که منم فکر میکردم گفت این آهنگ هماسی است و صحبت از آزادگی می کنه قراری بودشتیم و قسمت از این ترانه رو ساخت که به این نحب شروع می شه با آن که همچون عشق قم برخواه که رخ افتاده ان من با آن که هر شب ناله ها چون مرق شب فرداده ان من در دل ندارم حوزی تشمی ندارم بکردی آزاده ان من گذشت چند ماه از این موضوع گذشت اتفاقا رهی بیمار شد و من برای تمام کردن این آهنگ شدارن به اون مراجعه کردم برحساس حالاتی که به خاطر اون که سالت در وجودش بود بقیه این آهنگ تمام شد با این که با آزادگی تمام میشه ولی من با دو قسمت هم میشه رو برای شما میخونم تا بینید که چه اثری روی این آهنگ به وجود اومده یارب <تصفيق> که من افتاده ای کن افتاده ای آزاده ای کن تارفزد جانم برون سودای هستی، آزادم، آزادت قوغای هستی. گلوانگ مزدی آفرین همچنگهی سر دادم من، مرق شباهنگم، ولی در دامتن افتادم من، خندانی لب و خونینگگر مانند جام باده هم، آزادم من. ما در وان راهی ماجری، و تن دوست تیلاتمان و دل واسه به ملیات این سرزمین بود. ایران را می پرسید. راهی ماجری دستای دیه این و تن خواهی، آش آر میهنی به سیاری نیست روده که نوان رنیست در آرشیو رادیو ایران از آش آر میهنی شاد روان دهی دسته. از اینکه آقای بادیی ای خونه ندارد رادیو ایران نیست در کنیمار. از یشون خواهیم کرد این که درباره ی این شعر می‌همی و آهنگی که بر روی آن گذاشتن و آشنایی را احساسات رهی و هنگامی سرودهای این شعر را با یاندارند. اما رو با اینجانبه یا قابل فهمنی شاه ایران در گذشته کاش نداشتند. اوه بله خواهیم کرد. در مناسبتی بیست و پنجین سالی سلطنت شاهنشاه علی آهنگی ساختن که در برنامه گلها اجرا شد. در خاطر در آن زمانی برای سرویدن آشکار آمده‌ایم ولی که دم فوقلاده اظهارش گیاب کرد محصوصاً به خاطر این که موضوع ترانه کمده شاخ پرستی و میهندوستی دارید زهی در این ترانه استادانه کلماتی استخدام کرده که مبین قرور میهندوستی هست در یه قسمت از ترانه میگوید ایران پرستی رسم و ره ماست پرقود گردون مندلگه ماست عده‌ی متی شوحن شهریما خوشحال خوشحال روزجارما به شادی شهریارم. کار شود یک جام داد مندمانه سپیر آگاهیار همتی ولندمانه راهی به مشتاقباری که انتفاض کنم راهی به مشتاقباری که انتفاض کنم که افتاد جام تاداچم اندمانه آیهی، از شوارای ماهرت گلچین و آمی ریه فیروزکوه و پشمان بختیاری اراده می‌فاسد. و اینکه، اول یه پشمان بختیاری دوست دو یاور دیگر نگهشاعت در داشتن انجام، که به اینکه شمین از خلق هویو رفتار و خصایسان در گذشته ادیت ما روی ما حدیثی بپیاد. ای یه پشمان، دوستم برای ما بگید او چطور نشمر می‌رسد؟ رفتان رو خصای صشت کدام بود چه خاطراتی از روز دیگیری نتان بیاد دارید و بناخره قدر او را در شیعه معاصر پارسی تا چه پا نمیدانید با کمال سلسری باید ارس کنم که این حادثه به طوری افقار من مشبهش کرده و حضور زه زد من گرفته که شاید اونطوری که لازمه نتوانم پاسخ سال شما رو بتونم ولی به طور کلی عرض می کنم اند در حال اجرا داره چیزاتو نو شاید یکی کنه تصنیف سرای بودن که تنورش رو از دیا خورده تا جور بود. چونی یکی از تصنیفاتی ماله زهی از شابشلم، علاوه بر شابشلم است. در دسترس تو می‌خوند. فرمان گفت که تو قدر حرفخویی یا تصنیف، از اونکه استفاده نمی‌تونه بکنه که این تصنیف، این تخصص. و بعدها به من می گفت همون تصمیفی که تو اونجا ساخته بودی باعث شدید من به طرف تصمیف ترایی برام جمعن می کنم که اول تصمیفی که اون ساخته یا لاقل من شنیدم تصمیف سیلم از زندگانی بود به شبیه در خانه روسی با حضور فرهاد فرهاد متی و دوله احجادی و زمی از روحای دیگر بودیم که این تصمیح خونده شد بی نهایت در ما محصر افتاد سآل که دام این تصمیح هست کهی رهی گفت نمیدونم نمیدونم ولی متیدانه خندید گفت از خود افتاد و عزب این که اون اثری که در ما گذاشته بود در خود رحی هم همونطور بود یعنی رحی هم متأثیر شد می شود تختی که این نشازه می شنید فسنیف خود شد. مرمو شد که بعد هم که طاقته خود رو بوده رحی فسنیف رد به مرحله بالا برد که می تونم با کمال جرعت از کنم نظیر و مانند این نداشته و شاید بعد از این هم به سهولت کسی پیدا نشود که بتوانه پس می بره به زبانی بسارده که انسان خیاب کنه قضل می شده و نهده گوی بارم به کسی بر نکنه زهی در دوستی تطریبا بیندیر بود هر وقت که با کسی ملازه می شد اول کاری که می کرد می بوسید دوره و در مزید تحویی دست انسان که نشسته بود دست بود تسلیم سان زاپیر و نیکلش کرد تا تمام مدرات ناظرش میکرد رو همچون جان میگاه میدارد که نشان دادم من دلمم خواهد تا یه دایگار صدورش. تلفن اگر میتونیم بافست تلفن همیشه با ابراز جانم بکربانت پرسش میدادیم سان. خلاصه یکبار ته محبت و سفاف و دوستی بود. رهی چایری دردآش ناظر شوف پس از ماه های ماری. در این دو سه ماه آخر در یافته بود که به درد بیگرمانی دوچار آمده است. چون این را فهمید اتاقش را از همین یادگارهای پشور زندگیش از ساز و نقاشیهایش از کتابهایش از یاد داشتهایش خالی کرد و تنها و دهت من در را به روی خود بست. او که مرگ پتون را در یافته بود اینکه نمیخواست در دیدگان ایادت کنندگانش بارگیت رحمت سوزی را حال، و بود از و او بردید. اما نمیخواستیم که یاز یاران رهیرا از سرده حال تشماده، هبیرانگو بوده و سرنات همانی از یه تزار بازی آمد. اولیش چهلانی بود، تنهاو خالهت گزین زیست بود. اینک میباید که مارگی چهلانی و درخور برگزیند. پس مارگی دارد تنها یو. تاریخی و بیخبری را انتخاب کرد آخر نهید که گوی گردن فرازی زیبارا چون مرگ در وزد ناگهان به دریا می زند و تنها و دور در دلیل هم باج جان می زبارد و هی مریش را برای خود و در خلبت خود محفوظ نگاه داشت شاعر فرزان حال چون گوی گردن فرازی よだしビ خير、まはおどし。